أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 استطعماء اهلاها فابوا ان يضيفوهما فعجلا فيها جدارا يريد ان يقضى فاقام قال لو شئت لاستقضت عليه اجرا پس بره خود ادامه دادند تا به اهل قریه رسیدند از آنان خواستند که به ایشان قضا دهند ولی آنان از مهمان نمودن آنان خودداری کردند آنگاه در آنجا دیواری یافتند که میخواست فروری زد پس خضر آن را راست و استوار کرد موسا گفت اگر میخواستی میتوانستی در مقابل این کار مزدی بگیری قال هذا فراق بینی و بینک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 اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك كل سفينه غصبا اما کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می‌کردند پس من خواستم آن را مأیوب کنم، چرا که پشت سر آنها پادشاهی ستمگر بود که هر کشتی سالمی را به زور می‌جرفت. و آمّا الغلام فکان ابواه من این فقشین این یورقهم طغيان و, و نوجوان. پدر و مادرش هر دو با ایمان بودند پس بیم داشتیم که آنان را به سرکشی و کفر بادارد فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه از این رو خواستیم که پروردگارشان فرزند پاک در و پر به جای او به آن دو عطا فرماید وأما الجدار فَكَانَ لِغُول مَنةِ في فِي المدينةِ وكان تحته ت تحتهُ كَزُ اللَمَا وَكَانَ تَ تحتهُكَزُ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 این بود راز و حکمت کارهایی که نتوانستی در برابر آنها صبر کنی. او اسالونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه به ای پیامبر، از تو در باری ذوالقرنین می‌پرسند، بگو به زودی چیزی از سرگذشت او برای شما خواهم خواند. انا له في الارض من كل یقینا ما به او در زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم پس او از این اسباب پیروی و استفاده کرد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 آنگاه او را مجازات سختی خواهد کرد و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسن و سنقول له من امرنا یسرا و اما کسی که ایمان آورد و کار شایسته انجام داد پس در آخرت پاداشی کو دارد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 که هیچ سخنی را نمیفهمیدند قالوا يا ذالقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرج فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا آنان به او گفتند اي ذوالقرنین یا و معجوج در این سرزمین فساد می‌کنند، پس آیا هزینه ای برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سدی بسازی؟ قال ما مسكنني فيه رب خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم و ردما. زو کردن این گفت: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 تا وقتی قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد گفت اکنون مس زوب شده برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم ان له سرانجام صد محکمی ساخت پس آنها اصلا نتوانستند از آن بالا روند. و نتوانستند سوراخ و نقبی در آن ایجاد کنند. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا.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 الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع آن کسانی که چشم از یاد من در پرده غفلت بود و توان شنیدن حق را نداشتند آفحم بلذین کفرن، آیا اتخد عبادی من دونی اولیاء؟ اینا اعتدنا جهنم للكافرين آیا کسانی که کافر شدند؟ گمان میبرند که بندگان مرا به جای من اولیای خود بگیرند بی گمان ما جهنم را برای پذیرایی کافران آماده کرده ایم قل هل ننبعکم بالاخصرین اعمالا ای پیامبر بگو آیا شما را به زیان کار ترین مردم در کارها خبر دهیم الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا كسانی که تلاش و کوکششان در زندگی دنیا تباه و زایل شده و با این حال گمان میکنند که کار نیک انجام میدهند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 به خاطر آنکه کافر شدند و آیات من برانم و پیامبرانم را مسخره گرفتند این الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في نزلا. بیگمان کسانی که ایمان اند و کارهای شایسته انجام دادند باغهای بر این محل پذیرایی آنان خواهد بود خالدین فيها لا يدغون عنها حي ولا جفدان در آن خواهند ماند و هر کی تقاضای نقل مکان از آنجا نمی‌کنند قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أي پیامبر بگو اگر دریا برای نگارش کلمات پروردگارم جوهر شود، قطعا دریا به پایان میرسد، پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد، هرچند همانند آن دریا به کمک آن بیاوریم. قل انما انا بشر مثلکم انما لهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك احدا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 کاف ها یا عینصاد کاف ها یا عینصاد ذکر رحمت ربک عبده ذکريا این بیان رحمت پروردگارت نسبت به بنده اش است. اذ نادى ربه خفیه. چون پروردگارش را به ندایی پنهان به دعا خواند قال رب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 خفت الموالی من ورائی وكانت امرأتی عاقرا فهبلی من لدنك ولا و به راستی كه من بعد از مرگ خودم از وارثانم بیم و همسرم نازا و عقیم است پس از نزد خیش وارثی به من عطا فرما یرثنی و یرث من آلی عقوب و جعله رب رضیان که وارث من و نیز وارث آلی عقوب باشد و پروردگارا او را پسندیده قرار ده یا <سلام> ذکری یا اینا نبشر که بغلام نسمه یحیالم نجعل له من خداوند فرمود ای زکریا همانا ما تو را به پسری بشارت می دهیم که نامش یه که پیش از این همنامی برای او قرار نداده ایم قال رب ان ما يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا گفت پروردگارا چگونه برای من پسری خواهد بود در حالی که همسرم نازاست و من نیز از شدت پیری بناتوانی رسیدهام وقال كذلك قال ربك هو علي هيّن وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا فرشته گفت این گونه است پروردگارت فرموده است این بر مناسان است و به راستی پیش از این تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی قال رب اجعلني آیه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 و, زکاتا و, و نیز به او شفقت و پاکیزگی از جانب خود عطا کردیم و او پرهیزگار بود و براً بی والدهی و لم یکن جباراً عصیه. و او نسبت به پدر و مادرش نیکو کار بود و سرکش و نافرمان نبود و سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم یبعث حيا و سلام بر او باد روزی که متولد شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود اذكر في الكتاب مريم اذ من اهلها مكانا شرقیا. و در این کتاب مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش کنار گرفت و در ناحیه شرقی مستقر شد و من دونهیم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا پس میان خود و آنها پردئی کشید انگاه ما روح خود را به سوی او فرستادیم پس به حیعت انسانی کامل بر او ظاهر شد قالت اینی اعوذ بالرحمن من که <تصفيق> مریم گفت همانا من از شر تو به خدای رحمان پناه میبرم اگر تو پرهیزگار هستی قال انما نا رسول ربك غلاما فرشته گفت یقینا من فرستادهٔ پروردگار تو هستم تا پسر پاکیز ای به تو ببخشم والت <سؤال> ان ما يكون غلام ولم ولم گفت چگونه ممکن است مرا پسری باشد در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته است و هرگز زن بدکاری هم نبودم قال كذلك قال ربكي هو عليهن ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرنا قضية فرشته گفت این گونه است پروردگارت فرموده است این کار بر آسان است و او را برای مردم نشانهای ای قرار میدهیم و نیز رحمتی از سوی ماست ما و این امریست انجام یافته فحملته فانتبت بی مکانا قصیا پس مریم به او باردار شد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 قنگین مباش به راستی پروردگارد زیر پای تو چشم ای جاری قرار داده است. و الیک تساقط رطباً این تنی درخت خرما را به طرف خود تکان بده که رتب تازعی بر تو فرو میریزد. فكوني واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي انني نذرت للرحمن صوما فقولی نذرت صوما فلن اليوم پس از آن بخور و از آب چشم بنوش و دیدگان را روشن دار. پس اگر کسی از انسانها را دیدی با اشاره بگو همانا من برای خدای رحمان روز نظر کرده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 <تصال> يا اخت هارون ما كان ابوك امراؤ ثؤي وما كانت امك بغيا اي خواهر هارون پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز زن بدکاری نبود نبود فاشارت الی قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فسمريم به او اشاره کرد گفتند چگونه با کسی که کودکی است در گفتگو سخن بگوییم قال انني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا عيسو گفت من بنده خدا هستم به من کتاب داده و مرا پیام برقرار داده است و جعلنی مبارکم اینما کنت و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیه و مرا هر جا که باشم پر برکت و فرخنده قرار داده و تا تازنده امرا به نماز و زکات سفارش کرده است و برم ولم و یجعلنی جبارا شقیه و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و مرا سرکش و بدبخت قرار نداده است و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. و سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته شوم. این است حکایت ایسا پسر مریم گفتار راستی که در آن تردید و اختلاف میکنند. ما كان لله أن یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امران فا یقول لهو هرگز شایسته خدا نیست که فرزندی برگیرد او منزه است هرگاه کاری را فرمنده دهد و بخواهد فقط به آن میگوید موجود شو پس بیدرنگ موجود می شود و این الله ربی و ربکم فاعبدون هذا صراط مستقیم و عیسی به قومش گفت یقینا الله پروردگار من و پروردگار شماست پس او را پرستش کنید که راه راست این است. واختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. آنگاه گروهای یهود و نصارا در میان خود اختلاف کردند. پس وای بر کسانی که کافر شدند از حضور در آن روز بزرگ اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین آن روزی که نزد ما میآیند آیند چه خوب شنوا و چه خوب بینا هستند لیچند ستمکاران امروز در گمراهی آشکارند و انذرهم یوم الحسرت این قضی الامر و هم في غفلت و هم لا يؤمنون به ای پیامبر آنها را از روز حسرت بترسان. آنگاه که کار پایان پذیرد و آنها همچنان در غفلتند و ایمان نمی آبرند اینا نحن نریف الارض و من علیها و ایلینا یرجعون همانا ما این که زمین و کسانی را که بر آن هستند به ارث میبرین و همگی به سوی ما بازگردانده میشوند و ق ف کتابی برابراهیم این كان خویقان نبی و ای پیامبر در این کتاب ابراهیم را یاد کن بیگمان گمان او پیامبری راستگو بود.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 خاطر او را به راه راست هدایت کنم یا ابتي لا تعبد الشیطان، ان الشیطان كان للرحمن عصيا ای پدر جان شیطان را پرستش نکن زیرا که شیطان نسبت به خداوند رحمان نافرمان بود یا أبتی إنی أخاف أن یمسك عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا ای جان، من از این ترسم كه از سوی خداوند رحمان عذابی به تو برسد آنگاه از دوستان شیطان باشی قال اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا لا لَئِنْ لم تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَنِيَا پدرش گفت ای ابراهیم آیا تو از معبودهای من روی گردانی اگر باز نیایی قطعاً تو را سنگسار سار و برای مدت طولانی از من دور شو. قال سلام علیکس استغفر لک انه كان که نبی ابراهیم گفت سلام بر تو به زودی از پربرد گارم برای تو طلب آمرزش خواهم کرد بیگمان او نسبت به من مهربان است. و اعتذرکم و ما تدعون من دون الله و ربی عساء لا اکون بدعاء ربي ربی شفیه و از شما و آنچه به جای خدا می کنار گیری می و پروردگارم را میخوانم. امید است که در خاندن پروردگارم محروم نباشم فلما اعتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا پس چون از آنها و آنچه به جای خدا میپرستیدند پرستیدند کنار گیری کرد، اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم، و هر یک از آنان را پیام برگردانیدیم. و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق عليا. و از رحمت خود به آنها عطا کردیم، و برایشان در میان امتها ذکر خیر بلند آوازهای قرار فرار دادیم و اذکر فیل کتاب موسی انهو مخلصا و رسولا نبیه. و ای پیامبر در این کتاب موسی را یاد کن به راستی او مخلص بود و فرستاد ای پیامبر بود و نادیناه من جانب الطور الایمن و قربناه نجیه. و ما او را از طرف راست کوه تور ندادادیم و رازگویان او را به خود نزدیک ساختیم و وهبنا له من رحمتنا اقام هارون نبیه. و ما از رحمت خود برادرش هارون را که پیام بر بود به او عطا کردیم و پررف کتابی اسم این ك و نبی و در این کتاب اسماعیل را یاد کن بیگمان او راست وعده و فرستااد ای پیام بر بود وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. و او هموار خانواده را به نماز و زکات فرمان میداد و نزد پروردگارش پسندیده بود وان تر الكتاب ادري كان و در این کتاب ادریس را یاد کن بیشک او او پیامبری راستگو بود و رفعناه مكانا عليا و ما او را به جایگاهی بلند فرابردیم اولئک الذين انعم الله عليهم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 و از کسانی که آنها را هدایت کردیم و برگزیدیم، چون آیات خداوند رحمان برانها تلاوت می سجده کنان و گریان به خاک می افتادند فخالف من بعدهم خلف اضاع الصلاة و الشهوات فسوف یلقون غیات آنگاه پس از آنان فرزندان ناخلفانی جانشین شدند نماز را زایع و ترک کردند و از شهوات پیروی کردند، پس به‌زودی کیفر گمراهی خود را خواهند یافت الا من تاب و امن و عمل صالحا فاولائک يدخلون الجنه ولا يظلمون شیئا مگر آنکه توبه کرد و ایمان آورد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 که خداوند رحمان به غیب بندگانش را به آن بعد داده است مسلما او فرا خواهد رسید لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیها در آنجا سخن بیهوده نمی شنوند جز سلام و بر آنها هر صبح و شام روزیشان در بهشت آماده است نورث من, عبادنا من این همان بهشتی است که از میان بندگان من به آن کسی که در دنیا پرهیزگار بوده به ارث می دهیم و ما نتنزل الا بامر امر ربک لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیه و جبرئیل به پیام برعرض کرد ما فرشتگان جز به فرمان پروردگارت نازل نمی شویم. آگاهی از آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و آنچه میان این دوست همه از آن اوست و پروردگارت هرگز فراموش کار نیست. رب السماوات والارض وما بينهما بینهما فعبده و لعبادته هل تعلم له سمیا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 سپس همه آنها را به زانو در آمده پیرامون جهنم حاضر می <speaking in the heart> آنگاه از هر گروه کسانی را که در برابر فرمان خداوند رحمان از همه سرکشتر،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 كان علی رب حتما مقی و هیچیک از شما نیست مگر آنكه وارد آن شود این وعده بر پروردگارد فرمانی حتمی و شدنی است ثم ننجی الذین اتقوا ونذروا الظالمین فی هجسیا سپس کسانی را كه تقوا پیشه كردند از آن رهایی میبخشیم و ستمکاران را به زانو در آمده در آن رها می‌کنیم و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا قال الذین کفروا للذین آمنو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 حتى اذا راوا ما يوعدون انما العذاب وانما الساعه فسيعلمون فسيعلمون من هو شر ما كانوا واضعف جندا اي ايامبر بگو كسي که در گمراهی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 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ و کسانی که هدایت یافت اند خداوند بر هدایتشان می و نیکی های شایسته ماندگار در نزد پروردگارت پاداش بهتر و عاقبت خوبتر دارد. آفرأيت الذي كفر بآياتنا و قال لؤتين ما لؤ و ولد. ای کسی که به آیات ما کافر شد و گفت قد انمال و فرزند فراوانی به من داده خواهد شد.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 و بر عذاب او بسیار میافزاییم. افضاییم و نرتمو ما یقول و یعطینا فردا و آنچرا می از او میگیریم و تنها نزده ما میآید و اتخذو من دون الله آلیهتا لیکنو لهم عزا و آنها به جای خدا معبودانی را برای خود برگزیدند. تا سبب عزتشان باشد کلن سيكفرون بعبادتهم و این ضدا نیست بلکه به زودی معبودها عبادت آنان را انکار خواهند کرد و بر ضدشان برخیزند أ تاَّ أزلن الشيطين على الكافينة أُزُم <تضيف> أزد فيی پام بر آیا ندیدی که ما شیاطین را بر کافران فرستادیم تا آنها را سخت برانگیزند فلا تعجل عليهم مَِّ م ن عُذهم پس ای پیامبر درباره آنها شتاب نکن ما با دقت عجل و اعمال آنها را می شماریم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. روزی که پرهیزگاران را به صورت مهمان به سوی خداوند رحمان گرد آوریم و نسوق المجرمین الی جهنم موربا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 خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده است لقد جئت شيئا إبدا براستی چیزی بسیار زشت آوردید تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبالها نزدیک است آسمان‌ها از این سخن از هم متلاشی گردد و زمین شکافته شود و کوها در هم شکافته فرو ریزند از این روی که برای خداوند رحمان فرزندی ادعا کرده اند و ماین بهیل رحمان این ولدا و هرگز برای خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزندی برگزیند این کل من فی السماوات والارض الا اعبد الرحمن عبده. هیچ چیز در آسمانها و زمین نیست مگر اینکه به بندگی سوی خداوند رحمان بیاید لقد احصاهم وعدهم عده خداوند همه آنها را سرشماری کرده و به دقت شمارده است و هم آتی اوم فردا و همه آنها روز قیامت تنها نزد او حاضر میشوند این بیگمان الصالحات الرحمن بی کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند خداوند رحمان برای آنها محبتی در دلها قرار میدهد ف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 و کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزه و چه بسیار نسل ها که پیش از انها حلا کردیم آیا کسی از انها را احساس می کنی یا کمترین صدایی از انها می بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهربان آه، تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ای پیامبر ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که به مشقت افتی إلا تلكتم يخش مگر آن یادآوری برای کسی است که از خدا میترسد م من حال قال الله السمااوات نرونا این قرآن، فرو فرستاده شده از سوی کسی که زمین و آسمان های بلند را آفریده است. الرحمن على العرش خدا خداوند رحمان است که بر عرش قرار گرفت. له ما فی السماوات و ما فی الأرض و ما بينهما و ما تحت الثرى. از آن اوس آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه میان و آن دو است و آنچه زیر خاک پنهان است. وإن تجهر بالقول فإنه یعلم السر وأخفیه و اگر سخن آشكا بگویی یا آن را پنهانداری داری بی بیگمان او راز نهان و نحن تر را میداند الله لا إله إلا, الا هو له الأسماء الحسن او الله است. که هیچ معبودی جز اونیست نام های نیکو از آن اوست و هل اتاک حدیث موسی؟ به ای پیامبر آیا خبر موسی به تو رسیده است از رآنا رن فقال لی اهلهم فقال لأهلهم یا نست نارا لعلی لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علن نار هنگامی که آتشی را از دور دید پس به خانواده خود گفت لحظه درنگ کنید همانا من آتشی را دیده شاید ای از آن برای شما بیاورم یا بر آن آتش راهنمایی بیاوم فلما اتاها نودی پس چون نزد آن آتش آمد ندا داده شد که ای موسا اینی انا ربک فخلع نعليم اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَا همانا من پر بردگار تو هستم پس کفش را بیرون کن که تو در بادی مقدس تو هستی وَاَنَ اخْتَرْتُ كَفَسْتَ مِعْلِ مَا و من تو را به پیام بری برگذیدم پس به آنچه بر تو وحی می شود گوش فراده. این منی الله لا اله الا انفعبدنی و اقیم الصلاة لذکری یقینا من الله هستم هیچ معبودی به حق جز من نیست پس مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من برپا دار این الساعه اتیه نفس بما قیامت خواهد آمد می خواهم وقت آن را پنهان دارم تا هر کس در برابر سعی و اعمالی که میکند جزا داده شود الا نك پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس خود خود پیروی میکند تو را از آن باز دارد که هلاك خواهی شد وما به ای موسا آن چیست به دست راستت قال هی بها علی غنمی ولی گفت: « این عصای من است بر آن تکی می کنم و با آن برای گوسفندانم برگ درختان فرو می ریزم و مرا با آن کارهای دیگری نیز است که برآورده می کنم قال القها يا موسى فرمود ای موسا، آن را بیان کن فالقاها فاذا هي حيه تسعى پس موسی آن اثار را آفکند که ناگهان ماری شد که به هر سو می‌دوید قال خذها ولا تخف وراتله فرمود آن را بگیر و نترس به زودی آن را به صورت اولش باز میگردانیم و میدک ای جناخیک تفروج باامین سو این آ اخرا و دستت را در بغل خود کن تا سفید و بی ای بیرون آید این نیز معجزه دیگری است لینور تا آیات و نشانه بزرگ خود را به تو نشان دهیم اذهب الى فرعون إِنَّهُ طَغَى. اینک به سوی فرعون برو بی گمان او سرکشی کرده است قال ربش رحلی صدری موسا گفت پروردگارا سینه را برایم بگوشا و یسرلی امری و کارم را برایم آسان گردان وحلل عقدت من لسانی و گره از زبانم باز کن یفقه قولی تا سخنانم را بفهمند. فهمند و جعلی وزیرم من اهلی و برای من یاور و وزیری از خاندانم قرارده حارون اخی برادرم حارون را اشدد به ازری به وسیله او پشت مرا محکم کن و و او را در کار من شریک ساز گین و حک كثيرا تا تو را بسیار تسبیح گویم و انا الذکرک كثيرا تا بسیار تو را یاد کنیم اینک کنت بنا بصیر بی شک تو به حال ما خوب بینایی قال قد اوتیت سئلك یا موسی فرمود ای موسی هرچه خواستی به تو داده شد وَلَقَدْ مننا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى و به تحقیق ما بار دیگر نیز بر تو منت نهاده این. اذا اوحينا اليك كما آن هنگام که به مادرت الهام کردین آن چرا که باید الهام میشد اني قذيفيه في التابوت فقذ فيه في يم مثيللق يم بالساحل عدولی عدو لوعدو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 و تا در برابر دیدگان من پرورشیابی تمشی تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى أمك كي تطرب عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فلنجيناك من الغم می وفتا نا کافتونا فلبست تسلینا فی اهل مدین ثم جئت علی قدری آنگاه که خواهرت میرفت و میگفت آیا کسی به شما نشان دهم که سرپرستی را به عهده گیرد پس تو را به مادرت باز گرداندیم تا چشمش به دیدار تو روشن شود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 و تو را برای خودم خاص ساختم و پرورش دادم اذهب أنت وأخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذكری اینک تو و برادرت با آیات من برو و در یاد من سستی نكنید اذهبا الی فرعون انه طرا به سوی فرعون بروید بیگمان گمان او سرکشی کرده است له قولا پس به نرمی با او سخن بگوید شاید که او پند گیرد یا از پروردگارش بترسد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 إنني معتما اسمع وارى فرمود نترسید بیشک من با شما هستم میشنوم و میبینم فاتياه فقولا انما رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبه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 و سلام بر آن کسی که از هدایت پیروی کند اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا همانا به ما شده که محققا عذاب الهی بر کسی است که آیات و معجزات را تکذیب کند و روی بگرداند قَالَ لَهَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَى فِرْعَوْنُ گفت ای مُوسا پروردگار شما کیست او آل رَبّنَا الَّذِي آطَا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ موسی گفت پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به او ارزانی داشته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 لا يضل ولا موسا گفت علم آن نزد پروردگارم در کتابی است پروردگارم نه اشتباه می کند و نه فراموش می کند جعل جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ وسلك وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُمُلًا زلمین السماء ماء فان اخرجنا به ازواجا من نبات شسته همان کسی که زمین را برای شما گهواره و محل آسایش قرار داد و برای شما در آن راههایی ایجاد نمود و از آسمان آبی فرو فرستاد پس با آن انواع گوناگون گیاه را از زمین بیرون آوردیم. کلوا ان فی ذلک بخورید و نیز چهار پایانتان را به چرانید بی در این امور نشانه هایی برای خیرپندان است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 بتولا فی العون فجمع کیده ثم أتى انقاه فرعون بازگشت پس همه مکر و حیله خود را جمع کرد سپس آمد قال لهم موسى وی لكم <سؤال> موسی ویلكم لا تفتروا على الله كذبا فیسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا موسی به آنها گفت وای بر شما بر خدا دروغ نبندید که شما را با عذابی نابود میسازد و یقیناً کسی که بر خدا افترا بندد ناکام و ناامید می شود. فتنازعو بينهم و أسر پس آنها در کارشان میان خود اختلاف کردند و رازشان را پنهان داشتند. قالو این هذانی لساحرانی یریدانی این یخرجاکم یریدانی این یخرجاکم من ارضکم بی سحره ما و گفتند مسلمان این دو نفر جادو گرند شما را با جادوشان از سرزمینتان بیرون کنند و آینه برتر شما را از بین ببرند و عجی او گ م و وا اف من استعلا. پس همه حیل و تدبیر خود را گرد آورید و به کار بندید سپس در یک صف برای مبارزه بیایید و به راستی امروز کیر است کار خواهد شد که چیره و غالب گردد قالوا يا موسى انما ان تلقي وانما ان نكون اول من القى ساهران گفتند ای موسی یا این است که اول تو عثارابی افتانی یا آنکه ما کسانی باشیم که اول بیفتنیم قال بل الانقوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم أنها تسعى موسی گفت بلکه شما بیفکنید پس ناگهان ریسمان هایشان و عصاهایشان از اثر سحرشان چنان به نظرش رسید که حرکت میکند فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى پس موسا در دل خود ترسی احساس کرد قلنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى گفتیم نترس مسلماً تو غالب و برتری و مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صنعو. انما صنعوا كَيْدُ ساحر ولا يُفْلِحُ الساحر حَيْثُ عَتَى و آنچه را در دست راست خودداری بیفکن تا تمام آنچه را که ساخته اند به بلعت بیشک آنچه ساخته اند تنها مکر ساهر است و ساهر هر جا رود رستگار نخواهد شد فالقی سجدا قالوا آمنا هارون پس موسی عصای خود را افکند ناگهان به مار بزرگی تبدیل شد و همه آنها را که ساخته بودند بلید آنگاه صاهران همگی به سجده افتادند گفتند ما به پروردگار حارون و موسی ایمان آوردیم. قال له قبل آذن لكم، <تصفيق> انه لك الذي علمكم لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَاءَ فِرْعَوْنُ <تصفيق> قَال آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آورید؟ بیتردید او بزرگ شماست که به شما سهر آموخته است. پس یقینا دستانتان و پاهایتان بر خلاف یکدیگر قطع می کنم و شما را بر تننه های نخل بهدار میآویزم و بیشک خواهی دانست که عذاب و شکنجه کدام یک از ما سختتر است و پایدارتر است. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذی فطرنا فقضما أن تقاض إنما تقضی هذه الحياة الدنيا گفتند سوگند به آنكه ما را آفریده است هرگز تو را بر این دلایل روشنی که برای ما آمده ترجیح نمی دهیم. پس به هر حکمی که میخواهی خواهی حکم کن تو تنها می توانی در این زندگی دنیا حکم کنی این آمننا بی ربنا لیغفر لنا خطایانا ونا حدنا <تصفيق> علیه من و ما به پروردگار ایمان آورده این تا گناهان و آنچه را از که ما را به آن وادار کردی برای من ببخشاید و خداوند بهتر و پایدار تر است اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا بی گمان کسی که گناهکار به نزد پرورگارش حاضر شود پس آتش جهنم برای اوست در آنجا نه میرد و نزنده زنده ماند و من یأتهی مؤمنا قد عمل الصالحات فأولائی که لهم الدرجات العلا. و کسی که مؤمن نزد او آید در حالی که کارهای شایسته انجام داده باشد پس اینان برایشان درجات بلند است جنات و عدن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 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى موسى أن أسر بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فی البحر یبسا تخاف دركا ولا تخشی و بهراستی ما به موسی وحی كردیم كه شبان بندگان مرا از مصر بیرون ببر پس برای آنها در دریا راهی خوش بگشا که نه از تعقیب دشمنان خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا حراسی داری فرعون بجنوده من پس فرعون با لشکر آنان را دنبال کردند آنگاه دریا چنان که باید آنان را فرو پوشانید و اضل فرعون قومه و ما هدا. و فرعون قوم خود را گمراه نمود و هدایت نکرد یا بنی اسرائی لقد انجیناکن من عدو ویکوم ووعدناکم جانب الطور الايمن ونزلنا ونزلنا علیکم المن والسلوى ای بنی اسرائیل به راستی ما شما را از دست دشمنانتان نجات دادیم و در طرف راست کوه تور با شما وعده گذاردیم تا تورات را بر شما نازل کنیم و بر شما من و سلوا نازل کردیم. کل من طیبات ما رزق ولا ولا تقرفین فیحلل عليكم غضبی ومن می یحلل عليه غضبی فقد هوا. از پاکیزه ها آنچه به شما روزی دادی این و در آن سرکشی نکنید.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 سپس هدایت یافت و ما اعجلك عن قومك يا موسى ای موسی چه چیز سبب شد که از قوم خود پیشی گیری؟ قالهم هم على اثر و عجلت الیک ربي لتضوا موسی گفت پروردگارا آنان به دنبال من هستند و من به سوی تو شتاب کردم تا از من خوشنود شوی قال قد و فرمود بی گمان ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه کرد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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أو زرع من زينة القوم فقذفناها فقدفناها فكذلك ألقى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 فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ قُوَارٌ فَقَالُوْ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِی آنگاه برای آنها مجسمه گوسال ای که صدایی همچون صدای, هم صدای گوساله داشت پدید آورد پس سامری به پیروانش به مردم گفتند این معبود شما و معبود موساست که آن را فراموش کرده است افلا يرون ان ولا یملک لهم ضرا ولا نفع آیا نمیبینید که این گوسال هیچ پاسخی به آنها نمیدهد و مالک هیچ سود و زیانی برای آنها نیست و لقد قال لهم هارون من قوبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري ابيشط هارون پیش از این به آنها گفته بود ای قوم من یقینا شما به وسیله این گوساله آزمون شده اید و بیگمان گمان پروردگار شما خداوند رحمان است پس از من پیروین ما و فرمانم را اطاعت کنید قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع موسی آنها گفتند ما پیوسته پیرامون آن برای پرستش مینشینیم و آن را عبادت می کنیم تا موسا به سوی ما بازگردد. قال يا هارون ما منعك اذ چون موسا آمد گفت ای هارون چه چیزی تو را بازداشت؟ داشت هنگامی که آنها را دیدی گمراه شده اند الا امری. از من پیروی نکردی آیا فرمان مرا عصیان و سر کردی؟ قال یا بن أم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی إنی خشیت أن تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی هارون گفت ای پسر مادرم نه ریش مرا بگیر و نموی سرم را همانا من ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخن و سفارش مرا به کار نبستی. موسی رو به سامری کرد و گفت ای سامری این کار تو چیست چرا چنین کرده ای؟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 لنحرقانه ثم لننصفنه فی موسی گفت پس برو بیشک بهرهٔ تو در زندگی دنیا این است که بگویی به من دست نزنید و نزدیک نشوید و همانا ای از عذاب داری که هرگز تخلف نخواهد شد و اکنون به معبودت بینگر که پیوسته عبادتش می و آن را رها می کردی آن را خواهیم سوزاند سپس خاکستر و ذرات آن را در دریا پراکنده میسازیم. سازیم اینما ایلا الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما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 ای پیامبر این گونه از خبرهای آنچه گذشته است بر تو بازگو کنین و به راستی ما از جانب خود به تو ذکر داده این من اعرض عنه يوم وزرا. کسی که از قرآن روی گردان شود پس بیگمان او روز قیامت بار سنگینی از گناه بردوش خواهد کشید قالدی نفیه و لهم یوم حملا که در آن رنج جاودان خواهند ماند و برای آنها روز قیامت بدباری است یوم ینفخ في الصور و نحشر المجرمین یوم زرقا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 و ای پیامبر از تو درباره کوه میپرسند پس بگو پروردگارم آنها را سخت متلاشی و پراکنده خواهد کرد شاید صفصفا پس آنها را زمینی صاف و هموار میگرداند لا تافیها عوجا ولا انت که در آن هیچ پستی و بلندی را نبینی یومئذ یتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا در آن روز همه دعوت کننده را پیروی کنند هیچ راه سرپیچی و مخالفت نیست و همه صداها در برابر خداوند رحمان خاشع می شود، پس جز صدای آهسته چیزی نشنوی. تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ شفاعت هیچ کس سود نمی جز کسی را که خداوند رحمان به او اجازه داده و گفتار او را پسندیده است. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما آنچه را پیش رو دارند و آنچه را پشت سرشان است می و آنها به علم او احاطه ندارند. وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما و همهٔ چهرهها در برابر خداوند زندهٔ پاینده فروتن میشود و آنکه بار ستم بردوش دارد ناکام و معیوس میگردد و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هرما و کسی که کارهای شایسته انجام دهد در حالی که او مؤمن باشد پس نه از ستمی می ترسد و نه از کم کاستی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَطَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَطَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا و اینگونه آن را قرآنی عربی نازل کرده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 و علما. پس بلند مرتبه است خداوندی که فرمان روای حق است به تلاوت قرآن شتاب مکن پیش از آن که وحی آن بر تو تمام شود و بگو پروردگارا به علم من بیفضا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عِندًا فَبِرَأْسِي پیش از این به آدم سفارش کردیم و عهد بستیم پس او فراموش کرد و برای او از استوار نیافتیم و قلنا للملائكة اسجدون لآدم فسجدون الا ابلیس عبا و بیاداور انگاه که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجد کنید پس همه سجده سجد کردند جز ابلیس که سرباز زد فقلنا يا آدم این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 همانا برای تو این است که در آن نگرس نمی شوی و نه نمی مانی و اینکه لا تغمع فیها ولا تضحا و آنکه تو در آن نتش نمی شوی و نگرما می یابی فوسوس <وصوت> الیه الشیطان قال یا آدم هل أدلك علی شجرة الخلد وملك ل ی بلا پس شیطان او را به وسوسه انداخت گفت ای آدم آیا میخواهی تو را به درخت جاودانگی و فرمانروایی بیزوال راهنمایی کنم؟ فا اكل منھا فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق جن وعفا ادم ربه فغوا هنگاه ادم و حوا از آن درخت خوردند پس عورتشان برایشان آشکار گشت و شروع کردند که از برگ درختان بهشت بر خودشان میچسپاندند و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد پس گمراه شد فتاب علیه سپس پروردگارش او را برگزید پس تا به را پذیرفت و او را هدایت کرد قال بطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبعه ضايه لا يضل ولا يشقى فرمود شما شماطتن با ابلیس همجي از آن بهشت فرودایید در حالی که دشمن یک دیگر خواهید بود پس اگر از سوی من هدایتی برای شما بیاید هرکس از هدایت من پیروی کند پس نگمراه می شود و نبرنج افتد و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا و نحشرهو يوم القیامة اعمال و کسی که از یاد من روی گردان شود پس بیگمان زندگانی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا برانگیزیم قال رب لم حشرتنی اعمی وقد نتبصیرا گوید پروردگارا چرا مرا نابینا برانگیختی و حال آنکه من در دنیا بینا بودم قال كَذَلِكَ أَتَتْ كَآيَاتُنَا فَنَفِیتَهَا وكذلك الْيَوْمَ تُنْسَهَا فرمود همانگونه که آیات ما برای تو آمد پس آنها را فراموش کردی و اینگونه امروز تو در آتش فراموش خواهی شد وكذلك نجزی من أسرف ولم یؤمن بآیات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقا و, و اینگونه كسی را كه اصراف كند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد جزا میدهیم و یقینا عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في <تصفيق> متاكلهم ان في ذلك لايات لاولينها آیا برای هدایت آنها کافی نیست که پیش از اینان چه بسیار از نسل ها را هلاک کردیم که در مساکن آنها راه میروند؟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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطرف النهار لعلك ترضا پس ای پیامبر بر, بر آنچه میگویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب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 زهرت الحیات الدنیا لنفت فیه و رزق ربك خير و, و هرگز چشمان خود را به سوی آنچه از نعمتها و متاع دنیوی که گروههایی از آنان را از آن بحر من ساخته ایم ندوز اینها ها زینت ها و شکوفه های زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم و روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است و امر اهلک بی و علیها لا نسألوک رزقا نحن نرزقک و العاقبت و خانواده اطرا به نماز فرمان بده و خود بر انجام آن شکی باش ما از تو روزی نمیخواهیم. بلکه ما به تو روزی میدهیم و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است وقالوا لولا یأتینا بآیت من ربه اولم تأتیهم بینت ما فی الصحف الاولی و مشركان گفتند چرا معجزهای از جانب پروردگارش برای ما نمیآورد بگو آیا دلایل روشنی که در کتاب های پیشین بوده برای آنها نیامده است و انلت نهون بیاقبم من قابل میل لقال ورب بن لولا اوسللت علينا واصولا فنت تبیآياتیکن قابلی ان مذله و ناخزه اگر ما آنها را پیش از آمدن او با عذابی هلاک می کردیم از روز قیامت میگفتند پروردگارا چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی؟ تا پیش از که خار و رسفا شویم از آیات تو پیروی کنیم. قل کل متربصون فتربصون فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن من ای پیام بر بگو همه منتظرند شما نیز منتظر باشید.